سلام به قرآن آموزان عزیز تلاوت سوره همد استاد عبدالباسط یکی از قرائت های ماندگار و زیبای اوست دوست دارید شما هم شبیه استاد عبدالباسط این سوره را بخوانید احسنت پس با هم آموزش سوره همد استاد علی شاعی را ببینیم و بشنویم دوست قرآنی من سعی کن حرکات دست و نکات استاد را همراه ایشان انجام دهی موفق باشی